در خرابات مغان نور خدا میبینم این عجب این که چه نوریز کجا میبینم جلوه بر من مفروشه ای مل کلحاج که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم خواهم از زلفگتان نافگ و شاویی کردن فکر دور است همانا که خطا میبینم سوز دل اشک روان آه سهر ناله شب این همه از نظر لطف شما میبینم دم از روی تو نقشی زنددم را به خیال باکه گویم که در این پرده چه هاو میبیم کس ندیده است ذ مشک خطن و نافه چین آنچه من هر هر از باد سببا میبینم. دوستان ایی به نظر بازی حافظ مکنی که من او را ض محبان شما می بینم.